یک روز درست یادم هست سالهای پرهیاهو و آشفته جنگ دوم بود این جنگ عجیب جنگی که نه تنها همه حسابهای دنیا را به هم زد بلکه علم را بی آبرو کرد و فلسفه رایج تاریخ را که قرن نوزدهم به آن می بالید برباد داد و یک بار دیگر مثل صدها بار دیگر اما این بار از همه دندان شکنان نشان داد که تاریخ و جامعه یعنی انسان همیشه با حساب و کتاب فلسفه و علم و منطق و مبازین عقلی جور نمیمانند. نه تنها در قالب و فرمول هایی که ما برایش تر میکنیم نمی که به خلق و خوب و رسم و راه معمول خیش هم وفادار نیستند مگر ندیدیم که تاریخ از کمان اولیه به سرواجی و از آن به فئودالیته و از آن به برژوازی آمد و از آن به مرحله سرمایه داری صنعتی و امپریالیسم اقتصادی رسید و در این مسیر همه در انتظار ظهور پرولتاریا بودند که قیام کند و بر kapitalism بشورد و پس از جنگ انقلابی پیروزی قطعی را که جبر تاریخ مقدر کرده بود به دست آورد و ناگهان طوفانی برخواست و جهان زیر و زبر شد و آنچه در وهم کسی هم نمی گنجید در متن تاریخ و بر روی زمین پدید آمد و درست در همان هنگام که باید شاهد جنگ پرولتاریا با سرمایه داری می بودیم دیدیم که این دو با هم همدست و همگام و همدل شدند و با فاشیسم که هیچکس کس نمی دانست و نمی داند که چه سیغه است از کجا آمد و چگونه سرزد می جنگند. فاشیسم بربریتی که نه تنها حساب و کتاب جهان را برهم زد بلکه دیالکتیک را هم خجالت زده کرد و جبر تاریخ را مبهوت و انگشت به سالهای جنگ بود. سرخ و سیاه، کارگر و سرمایدار هر دو یک تز شده بودند. و با آنتیتز تز نوظهور غیر منتظر فاشیسم می جنگیدند. و دو نقیز که هزاران سال است منطق محال می و عقل تصورش را هم نمی کند با هم جمع شدند و چه جمعی؟ و علیه دشمن مشترکشان اشتراک دو نقیز هم از آن حرف است جنگی برپا کردند که ما در آن رول نعش را بازی کردیم و چه ماهرانه؟ یعنی دمرو افتادیم تا آن دو تز و آنتی تز که هم زیست شده بودند از پشت و پهلوی ما عبور کنند و ما ملتی دو ساله و بلکه بیشتر تبدیل به پل شویم در زیر سم قدار بندان قارتگر و خیشاوندی که یکی آزادی را مسخره کرده است و دیگری سوسیالیسم را و هر دو ما مؤمنین ساده دل روشن فکر نیم بند را به هر حال سالهای خون و ویرانی و شکست و پیروزی بود سالهایی که حال ما مستاق شعر شاعر شده بود که میان ابرو و چشم تو گیروداری بود در آن میانه شدم کشته این چه کاری بود و جنگ جهانگیری که در آن هر کدام پیروز شده بودند سهم ما معین و مقدر ما محفوظ بود نان خاکره و نجابت ملی، اما نه، از فیض عزمای دیگری هم برخوردار بودیم و آن مباحثه بود و انجام رسالت روشنفکران ما که عبارت بود از مبارزه با مذهب، و مجاهده در راه اثبات فلسفی و علمی و تاریخی و دیالکتیکی و طبقاتی و سوسیالیستی و پرولتریایی حقانیت خلافت بلافصل و امامت و ولایت استالین معلم خردمند بشریت و توجیه اعمال و رفتار و گفتار او از طریق احادیث مبسق و روایات مستند و منصوص رسیده از حضرت ختمی مرتبت عقل کل و ختم رسول و کوشش در پخش رساله‌های عملیه و عمل به فتاوای صادر شده و خلاصه کماف سابق، سینه زنی و مسئله گویی و تقلید از نایب امام و تعظیم شعائر و حفظ بیزه سوسیالیسم فرقی ندارد مگر تغییر اسم و رسم آدم را عوض می‌کند اما نه فرقی داشت در آنجا علما عقاید و احکام را از چهار منبع استخراج میکردند کتاب و سنت و عقل و اجماع و در اینجا روشن فکران عقل و اجماع را پاک مرخص کردند و ماند کتاب و سنت که آن هم تعویل و تفسیرش عمل خلیفه وقت بود و خلافت هم نه بر اجماع سنی و نه بسایت شیعی بر شیوه زیدی القائم بالصيف